قصه های هزار یک شب شب سی و هفتم چون پدر ایشان بمرد بسی مال به میراس گذاشت و از جمله آن مال صد بار کالای قیمتی از خز و دیبا و مشک بود که آن بارها را به قصد بقداد بسته و نام بقداد آنها نوشته بود چون مدتی از وفات او برفت پسرش همان بارها برداشته به بغداد روان شد و بمزررت و آفت به بغداد رسید و در آن اوقات ایام خلافت هارون و رشید بود چون خانه‌ای وسیع و عالی اجاره کرد و فرشهای رنگین در آنجا بگسترد و وساده های دیبا نهاد و پرده‌های حریر زرین تراز بیاویخت و بارها در آنجا فروچید چند روز به راحت بنشست بزرگان بقداد و بازرگانان به دیدن او همی آمدند پس از آن بقچه به خادم داده به بازار برد بازرگانان به دو گرد آمده سلام کردند و اکرامش نمودند و شیخ دلالان را حاضر ساخت متاع خیش بفروخت یک بر دو سود کرد و از آن سود فرحناک شد و تا یک سال مال میفروخت. چون روز نخستین سال نو شد به بازار آمده دید که در قیصریه را بسته اند سبب را جویان شد گفتند یکی از بازرگانان وفات کرده بازرگانان به جنازه او حاضر شده اند اگر تو نیز ثواب همین خواهی در آنجا حاضر شو. آنم محله و خانه آن شخص جویان شد. او را به خانه بازرگان درگذشته دلالت کردند. به جنازه حاضر شد و با تجار به مصلا رفتند و نماز میت گذاردند و جنازه به گورستان بردند. دیدند که پیوندان میت خیمه بر متفن زده و شامها و قندیلها افروخته اود به مجمر انداختهاند چون مرده را به خاک سپردند قاریان به طلاوت مشغول شدند و بازرگانان نیز نشسته بودند آنم بن ایوب را شرم آمد که از میان جمع برخاسته بازگردد. با ایشان تا هنگام شب بنشست. آنگاه خوردنی حاضر آمد، بخوردند و دست بشستند ولی قانم بن ایوب را خاطر به خیشتن مشغول بود و بر مال خود از دزدان همی ترسید. برخواسته از حاضران اجازت خواست و بیرون آمده همی رفت تا به دروازی شهر برسید دروازه را بسته یافت و هیچ کس آنجا از آینده و رونده ندید و جز آواز سگان و فریاد گرگان چیزی نشنید گفت سبحان الله من بر مال خود ترسان بودم که از آنجا به در آمدم اکنون بر جان خیش ترسانم پس مأمنی را همی خواست که تا صبح در آنجا بخسبد ای دید که چهار سوی او دیوارهای بلند داشت و درختی به میان مقبره اندر بود و دری داشت گشاده به آنجا رفته خواست بخسبد از ترس نتوانست خسبید و به دهشت اندر شد. آنگاه بر پای خواست و راست ایستاد و چشم بردر مقبره دوخته بود که از دور روشنایی بدید. از مقبره بیرون رفته اندکی به طرف روشنایی برفت. دید که روشنایی در راه مقبره است و به سوی مقبره همیآید ترسید و بازگشت و زودتر در مقبره را ببست و به فراز درخت بر شد و با تشویش خاطر چشم به روشنایی داشت و روشنایی همه آن نزدیک می شد تا نزدیک مقبره برسید نم دید که سه تن قلامان سیاه هند دوتن از ایشان صندوقی بردوش دارند و یکی از ایشان تیشه و فانوسی در دست دارد چون به مقبره رسیدند یکی از حاملان صندوق گفت ای سواب چرا به مقبره اندر نمی شوی? او جواب داد که ای کافور ما هنگام شام در اینجا بودیم در مقبره را بازگذاشته برفتیم غلام سیومین که الماس نام داشت گفت شما نمیدانید که پاره ای از مردم بقداد به تفرج بیرون آمده تفرج همی کنند چون شامگاه شود نتوانند بازگردند آنگاه بدین مکان آمده در ببندند و از ما زنگیان همی ترسند که مبادا ایشان را گرفته بریان کنیم و بخوریم. سواب و کافور گفتند که ای الماس راست گفتی تو از ما خردمندتر هستی. الماس گفت شما مرا تصدیق نخواهید نمود تا به مقبره اندر شویم و کسی را در آنجا بیابیم. و گمان من این است که اگر کسی در اینجا بوده است چون پرتو چراغ ببیند بگریزد و به فراز درخت برشود. قانم چون گفتگوی قلامان بشنید گفت: هزاران نفرین و لعنت با الماس باد که بس ایار و مکار است و با خود گفت که من چگونه از این برته خلاص خواهم یافت؟ پس حاملان صندوق با این یکی گفتند که سنگینی صندوق ما را آزرده است تو از دیوار بالا رو و در بروی ما بگشا ما نیز به پاداش آن یکی از ایشان را که در مقبره هستند تو بریان کنیم و نگذاریم که از روغن او قطری به زمین بچکد. او گفت مرا بیم آن است که دزدان دزدی کرده باشند و چون شب برآمده داخل مقبره شده اند. ایشان گفتند هیچ کس یارای آن ندارد که بدین مکان آید پس هر ستن صندوق را از دیوار بالا برده به مقبره اندر شدند و در بگشودند یکی از ایشان گفت که ما امشب از بار کشیدن و راه رفتن و درگشودن و دربستن مانده شدیم و اکنون نیمه شب است دیگر به گشودن سردابه و خاک کردن صندوق قدرت نداریم همان به که سه ساعت بنشینیم و راحت یابیم پس از آن برخاسته به کار خیشتن پردازیم آنگاه در ببستند و بنشستند یکی از ایشان گفت باید هر یک سرگذشت خیش بیان کنیم و سبب برید شدن آلت مردی خود بازگوییم چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است